نوار شماره 24 اچ از دری نوارهای رادیو ایران شاعران قصه میگویند قسمت هشتم ویس و رامین تکثیر شده در استودیو کتابخانه گویای سازمان ملی رفاه نابینایان ایران تهران به تاریخ دهم ده اسفند ماه 1355 شمسی تکثیر کنندگان مراد قرهقلی عبدالله قفاری شایران قصه میگویند هست اندر صورت هر قصه ای خرده بینان راز معنی حسه رومینگ قسمت آخر بخش از داستان ویس و رامین اثر فخرالدین اسعد گرگانی سخن سرای نامی قرن پنجم هجری صاحب دلان را رهاوردی بس جان آوردیم سخن به آنجا رسید که رامین پس از عزیمت به تبرستان و اختیار همسر چون هرگز نمیتوانست یاد ویس را از دل بیرون فرستد از همسرش گل دوری گزید و به مرب نزد ویس بازگشت دلدادگان در نخستین دیدار شکفه ها سردادند و اتاب آغاز کردند. اما همچون گذشته از گناه هم درگذشتند و شادمانه به ترب بنشستند. آنگاه رامین نزد برادرش رفت و به فرمان او فصل زمستان را در مرف بماند و نهانی از وصل ویس کام برگرفت. و اما بقیه داستان. وقتی زمستان به سر آمد و بهار گلریز و گلبیز در رسید، شاه موبد آهنگ نخجیر کرد و رامین را نیز که بهر دیدار ویس عزم همراهی با او نبود، با خود برای نخجیر به گرگان برد. دیگر بار میان دلدادگان روزگار تلخ جدایی چهره نمودار ساخت. به پیش شاه رفت آزاد رامین نکرده ساز ره بر رسم آین شهنشه پیش گردان دلاور بدو گفت این که نیرنگ است دیگر برو بستان زگنجور اون چه باید که ما را سید بیتو خوش نیاید بشد رامین ز پیش شاه ناکام چماهی کش بود سد در کام چو رامین راه گرگان را کمر بست تو گفتی گرگ میشش را جگر خست مبادا هیچ عاشق را چنین روز ز سختی سبر پرداز و روانسوز سوز چو شاهنشه فرود آمد به منزل به پیش شاه شد رامین بیدل هزاران گونه بر رویش گوا بود که او را صبر و هوش جدا بود نرامش کرد با شاه و نمی خواست بهانه کرد درد پا و برخاست چرامین دور گشت از بیس دلبند نشاط و کام از او ببرید پیوند نیاسود از حقیث و یاد رامین نگارین رخ به خون کردن نگارین آنگاه که ویس را در فراغ رامین اندوه از حد گذشت حدیث مهنت خیش را با دایه باز نمود دایه چارعی بس هراسناک پیندیشید و سپس ویس را گفت تا آن زمان که شاه موبد در کنار اوست شادکامی نامیسر و برخورداری بی استراب از رامین ناممکن است و آنگاه ویس را به برافکندن موبد از شهریاری و از میان بردنش فراخواند. و ثبابان چمورد که بیدرنگ رامین را کمراه موبد برای نخجیر به گرگان رفته بود باز و چاره کار کنند به دایه گفت دایه چاره ای ساز که رفته یار بدمهر آیدم باز که من با این بلا طاقت ندارم شکیب درد این فرقت ندارم مکان زین بیدلی بر من ملامت که خود برخواست از جانم قیامت به شهر از گریم طوفان بخیزد به کوه از ناله ام خارا بریزد ندانم چون کنم با که نشینم به جای دوست در عالم که بینم؟ جوابش داد دایه گفت هرگز نباید بودنم در کار آجز تو را داده است یزدان پادشایی تمامی و بزرگی و روایی تو موبد را بسی زشتی نمودی همیدون چند بارش آزمودی گر این تدبیر خواهی کرد منشین زهال خیش نامه کن به رامین بگویش تازه موبت بازگردد برفتن باد را ام باز گردد. تدبیر حولناک دایه ویس را پسند آمد و او دردم نامعی با سوز و نیرنگ به سوی رامین گسیل داشت تا بیدرنگ به مرو باز گردد و از آن پیش که جان به جان آفرین تصدیم دارد از دیدارش او را مسرور سازد چو بشنیدین سخن ویسه سمنبوی بوی برامد لالی شادیش از روی حریر و مشک و انبر خواست و خامه ز درد دل به رامین کرد نامه سخن در نامه زاری چنان بود که خون از حرف های آن چکان بود علا ای مهربان مهر پرور چونین کو نام از یار دلبر زیار یار و عاشق زار به یار سنگ دل و از مهر تنم چون شمع سوزان اشک ریزان چو ابر تیره از دل دود خیزان آمد همه راز نهانم به خونابه نویسد بر رخانم خدایا جان من بگذار چندان که بینم روی او آنگاه بستان چو ویس دلبر از نامی بپرداخت نوندی تیستک را سوی او تاخت نشب خفت و نه روز آسود در راه به رامین برد چون این نامه ماه تو رامین نامی روان رواندید تو گفتی صورت بخت جواندید چو بند نام بکشاد و فروخاند زدیده زد سیل بیجاده برفشاند سخنهایی بگفت از جان پرتاب که شاید گر نویسندش به تا که لواط داوری چون اینها که از قم بینی و زباله سا چرا این دام را بر هم ندرم درخت ننگ را از هم نبرم چون رامین گفت از این سانچم گفتار ز درد دل همی پیچید چون مار تنش در راه بود و دل بر ویس به چشمندر بمونده پیکر ویس قرارش رفته بود و سبر تا شب ز دل نشسته گرد بر لب خاور بود چشمش تا که سپاه شب که راهش برگشاید رامین نهان از نظر شاه موبد به مرو نزد ویس بازگشت و برای چاره آن کار هولناک تدبیرها کرد چو دود شب بماند از آتش روز فلک بنوشت خیری مفرش روز زلشکرگه کرگه براه افتاد رامین ندیدش هیچ کس جز ماه و پروین گهی تازان گهی پویان چو ترکان به یک هفته به مرو آمد زگرگان رسول ویس را از گسی کرد ز بهر ویس اندرزش بسی کرد که او را آگهی از من نهانده کجا این بار کار ما نهان به نشاید دید از این پس روی موبد وگر بینم سزاوارم به هر بد تو فردا شب بدش بر باش هوشیار، ز شب یک نیمه رفته گوش من دار بکن چاری که من پیش تو آیم به پیروزی تو را راهی نمایم فرستاده برفت از پیش رامین براهندر شتابان طرز شاهین به دانگه سیم برویس گلندام به در کهندش داشت آرام سپه زرد نامی کوتوالش که بیش از مال موبت بود مالش گزین شاه و دستور و برادر به گنج و خاسته قارون دیگر نگهبان بود ویسه دلستان را همیدون داد فرمان جهان را فرستاده چو باز آمد ز گرگان ز دروازه شدن در مرب پنهان پسانگه چون زنان پوشید چادر به پیش ویس بانو شد برستر بگفتش سر به سر پیغام رامین به سان در و شکر خوب و شیرین وقتی ویس را از بازگشت رامین آگهی رسید چون از کهندش که در نگهبانی زرد بود بیرون آمدن نمیارست به حیله نزد زرد کس فرستاد و به بحانه قربانی و آتش افروزی در آتشگاه به سبب رفع بیماری برادرش ویرو اجازه خروج از دج را یافت و شبانگاه که رامین از راه رسید به دو پیوه است گفت چون بود شادی ویس ز مرد چارگر آزادی ویس امونگه سوگ زردش کس فرستاد که بختم دوش در خواب آگهی داد به آتشگاه خواهم رفتن امروز به کار نیک بودن آتش افروز خورش به سایم آتش را ببخشش به نیکی و به پاکی و برامش. سپهبد گفت شاید همچنین کن همیشه نام نیک و کار دین کن پس ویس ویس شد با دوستداران دارن زنان مهتران و نامداران به دروازه به آتشگاه خورشید که بود از کرده های شاه جمشید چه مای ریخت خون گوس فدان ببخشید آن همه بر دردمندان؟ چو شب بر روی گردونسای گسترد فرستاده شد و رامین درآورد زنان مهتران یکسر برفتند همه بیگانگان از در برفتند کسان ویس با رامین بماندند همانگه جنگیان را برنشاندند چهل جنگی همه گرد و دلآور کشیده چون زنان در روی چادر به این چاره دروازه برفتند و زاتشگه ره کندز گرفتند رامین با گروه از دلیران برای دستیافتن به گنجهای برادرش شاه موبت شبانگاه به گنج او رفت زرد که نگهبان گنجها بود بیدار شد و كوشید تا مگر به زخم شمشیر رامین را دور سازد اما رامین برای دفع آن شمشیری بر پیکر برادرش زرد نباخت و او را از پای درآورد چو شب تاریک شد چون جان بد میر تو گفتی دود و قیرم دود بر چهر هوا از قعر دریا تیره تر شد فلک چون قعر دریا پرگوهر شد دلیران از کمین بیرون دویدند چو برگ مرد خنجر برکشیدند چو سوزان آتشن در دژ فتادند همه شمشیر در مردم نهادند چو خفته کش پلنگ آید به بالین به بالین برادر رفت رامین به جست از خواب زرد و تیغ برداشت کجا چون شیر در کوشش جگر داشت مرو را گفت رامین تیغ بفکن که بر جانت گزندی ناید از من منم رامین که بند از مرگاز کشتم تو را چون شنید آواز رامین فکند از قهر او بر ابرو چین زبان بکشاد بر دشنام رامین به زشتی برد نیکو نامش از کین به رامین تاخت چون شیر به بزد شمشیر بر تاورکش ناگاه سبک رامین سپر افکند بر سر یکی نیمه سپر بفکند خنجر بزد اونیز تیغی بر سر زرد چونان زخمی که مغزش را بدر کرد سرش یک نیمه با یک دست بفکند زخونش سرخ گل بر گل پراکند چوزیمسان کشته شد زرد نگون بخت شدن در دژ نبرد دیگران سخت چو رامین دید ویرا کشت برخاک همون گه جامعه را بر سینه چاک، همی گفت ای مرا فروخ برادر مرا با جان و با دیده برابر چو رامین مویه بر کشت بسی کرد همان بیسود سود اندوهش همی خرد نجای مویه بود و گرم خردن که جای رزم بود و نام کردن شبی آن شب از شبهای نامی چو مهر ویس بر رامین گرامی چو روز آمد بر آمد بخت رامین بزد برگیتی از شاهیش آزین رامین از آن پس که ساعتی بر پیکر بیجان برادرش زرد گریست گنج ها را برگرفت و به همراه ویس به سوی دیلمان گریخت پس گرد کرد از مرو یک سر به زودی هرچه اشتر بود و استر سراسر گنج های شاه برداشت آن یک رشته اندر گنج نگذاشت به مروندر درنگش بود دو روز براه افتاد با گنج و دل نشانده ویست را در مهد زرین چو مه به میان هفت و رنگ و پروین همی آمد به راهندر شتابان گرفته روز و شب راه بیابان زمین دیلمان است محکم به در لشکری از گیل و دیلم چو رامین شد آن کشور به شاهی بخت نیک دیده نیج خواهی روزی چون زرنج ره براسود به راحت بر سریع تخت بغنود شهان دیگر از هر جایگاهی گاهی فرستادند رامین را سپاهی